احتیاط روبا روزی بود و روزگاری بود سیادی برای شکار به صحرا رفته بود از دور روباه چاق و خوشرنگی را دید و دنبال او راه افتاد تا روباه به سوراخ خود رفت و سیاد خانه روباه را یاد گرفت بعد از این سیاد در نزدیک خانه روباه چاله ای کند و لاشه یک مرغابی را که آورده بود در آن انداخت و سر چاله را با خس و خاشاک پوشاند و خودش پشت تپهی به کمین نشست و فکر کرد که آقوت روباه بیرون می آید و گرفتارش می کنم و پوست نرم و لطیف او را به قیمتی خوب خواهم فروخت هنوز ساعتی نگذشته بود که روباه از سوراخ بیرون آمد و دنبال بوی لاشه آمد تا لب چاله ایستاد و با خود فکر کرد در این که بوی گوشت می آید حرفی نیست گوشت هم خیلی خوراک خوبی است. این هم به جای خود صحیح است. من هم خیلی گرسنه هستم. شکی هم ندارم که هرچه هست زیر این خس و خاشاک است. ولی چیزی که هست ممکن است که اینجا حیوانی مرده باشد و بعد این خارها و علفها را باد روی او ریخته باشد. این هم ممکن است که یک شکارچی در اینجا تله گذاشته باشد. چون همه مرا یک حیوان زیرک و باهوش می‌دانند، اگر به تمعی یک شکم خوراک در تله بیفتم برای من ننگ است. پس شرط عقل این است که احتیاط کنم و از خیر این چیزی که در آن احتمال خطر هست بگذرم و دنبال چیزهایی بروم که بدانم در آن اشتباهی نمی کنم. روباه این فکر را کرد و از خیر آن خوراک گذشت و راه سلامت پیش گرفت و رفت. هنوز چند دقیقه نگذشته بود که پلنگ گرسنهی از کوه پایین آمد و دنبال بوی مرغابی به سر گودال سرپوشیده رسید و به تمع گوشت بی احتیاط پیش دوید و خود را در گودال انداخت و با اینکه از افتادن دست و پایش درد گرفته بود به خوردن مشغول شد. همین که سیاد صدای افتادن جانور را در چاله شنید فکر کرد که روباه در تله افتاده. او چنان در فکر روباه بود که اصلا احتمال اشتباه را نداد و با عجله و بی احتیاطی جلو دوید و خود را به چاله رسانید و برای گرفتن روباه جلو رفت اما پلنگ گرسنه و خشمناک با یک حرکت خیز برداشت و با چنگال و دندان خود سیاد را حلاک کرد اگر سیاد هم مثل روباه دقت و احتیاط کرده بود و احتمال خطر داده بود هلنگ را با روباه اشتباه نمیکرد و جان خود را به باد نمیداد